علایا ایوه ساقی عدر کعسن و نابل ها که اشقا سن نمود اول ولی افتاد مشکل ها به بوی نافی کاخر سبازان تر بکشاید شاید ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها به بوی نافی کاخر سبا زن تره بکشاید زتا به جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها مرا در منزل جانان چه امن ایش چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید که سالک بیخبر نبود ز و رسم منزل ها؟ شب تاریخ و بیم موج و گرداوی چون این حایل کجا دانند حال ما سبک ساحل ها؟ همه کارم ز خود کامی به بدنامی کشید آخر نهان کیماندان رازی که زو سازند وحفلها حضور یر همی خواهی از او غالب مشهور حافظ متا ما تلق من تهوه دعید دنیا و احملها